ما بی غمان مست دل از دست دادیم همراز عشق و هم نفس جام بادیم ما بی غمان مست دل از دست دادیم همراز عشق و هم نفس جام بادیم بر ما بسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود زعب روی جانان گشادی ای گل تو دوش داغ سبوهی کشیدی ما انشقایدیم که با دا زادیم پیر مغنز توبه ما گرملول شد گوباد صاف کن که به عذری استادیم کار از تو می رود مددی ای دلیل راه این صاف میدهیم و زراح و افتادیم چون لالم می مبین و قده در میان کار این داغ بین که بردل خونین نهاده این گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست نقش غلط مبین که همان لوح سادین